حکایت در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم عرب را پرسید که روزی چه مای تعام باید خوردن گفت صد درم سنگ کفایت است گفت این قدر چه قوت دهد گفت ها المقدارو یهملو که و ما زاد علازال کف انت یعنی اینقدر تو را برپای همی دارد و هرچه بر این زیادت کنی تو حمال آنی خوردن برای زیستن و ذکر کردن است تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است.